بچه ها امروز سعید و الی یه گذاری داشتن تو عالم توییتر و بوی گل سوسن و یاسمن رو بین توییت هایی که کاربران ایرانی توی توییتر تولید کردن جستجو کردن زیپتون رو نکشیم صداش میاد میادن خب بچه ها چی آوردین؟ کی, کی چی گفته؟ کی بوی گل میداده؟ کی بوی گل سوسن میداده؟ چه خبر بوده؟ آره فشتی تو این دو سه روز بحث دهه فجر و دوزده بهمن اومدن امام حسابی داغه. خلاصه خیلی تویت های بامزهی داشتیم خالباز گفته که دوازده بهمن پنجه هفت تنها روزی بود که برای شادی روح نیازی به فاتحه نبود همون سخنانی امام تو بهشت زهره به قدر کافی تنز بود که ما رو رو بخندیم دیگه داره خانم فرزانه نوشتن که خانم امام ازشون پرسی روح الله جان صبونه تو هواپیما چی خوردین؟ امام گفتن کق با و پنیر اونم جواب داد دلم برای همین بانمک بازی هاتون تاییر شده بود <تصحیح> خلاقیت بشه خواب فرزانه آه, ترادیاتور گفته بیاین دعا کنیم امسال دوازده بهمن امام نیاد شاید همه چی ردیف شد شاید, شاید همه چی <تصحیح> <تصحیح> بعد فرانی نوشته که فکر کنم امسال دوازده بهمن خود امام خومنی رو هم سانسور کنن وار بعید با. نیست والله کم که همه رو سانسور کردن فقط خودش مونده بعد بعد <تصفيق> بابا گفته حضرات به هم افتادن دارن تمام جاهایی که امام دوازده بهم رفته رو زیارت میکنن خلاصه یهودی دی تو مصراح مهرابا دست گل بود تعجب نکنید <تصفيق>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 یکی امام روز 12 بهمن 57 بود یکم اندی تو اون کلیپ کارتونیش با با با پس از بوی گل سوسن و یاسمن و امام تو توییتر رسیدیم به آقا اندی خیلی حرکت بود خدای شاد دستتون داد نکنه ها سعید و الی ببینیم حالا این آهنگ آقای اندی که این دوستمون گفته بود چی میگفتن آقای اندی که این همه ازشون استقبال شده بود همون کلیپ کارتونیه است تو لا دیفیوسی تو قرص احساسی، با تو آواز تلخ رو نو خوشم نشد من تاو دیگه قانون خوشم قلايه نابی تو گلی کامیابی باشه باشادی مثل من بی تابی فقط به دور جنوبی گله من چی بگم چقدر تو گونی گله من تو گله من آره آره والا یه دون Are all love you? Oh yes.